عزیزان به کلاس دیگری از بررسی کتاب مقدس خوش اومدید. امروز ما بررسی و مطالعه کتاب هزقیال رو شروع می‌کنیم. نبیی نبی که پیغام خدا رو وقتی قوم خدا در اصارت بودن شاید در بدترین شرایط زندگی قوم در طی تاریخ برای اونها اعلام کرد. خدا می‌خواد که امروز توسط هزقیال با ما حرف بزنه. دعای ما اینه که وقتی وارد کلام خدا میشین کلام اون در شما نفوذ کنه. این شما و این معلم ما. در ادامه برسی بیا به هزغیال نبی رسیدیم. لازمه که ما هزقیال و مردی که بعد از او آمد و او رو پیروی میکرد یعنی دانیال رو بشناسیم. هزغیال و دانیال تقریبا هم سن بودن. دانیال وقتی چهارده ساله بود به عنوان اسیر به بابل برده شد. هزقیال نه سال بعد وقتی حدودا بیست و پنج ساله بود به اسیری رفت. از اینجا متوجه میشیم که ارمیا در هین سقوط اورشلیم و حتی بعد از سقوط اورشلیم در اونجا موعظه میکرده همزمان دانیال رو داریم که به بابل به اسیری رفته و تجربیات خارق العاده و خدمت خارق العاده در قصر نبوکت نصر داشته ما بعداً دانیال رو به عنوان یکی از مهیجترین انبیا خواهیم دید همزمان هزقیال در کمپ بردگان برای قوم یهودا که به بابل به اسیری رفتن موعظه میکنه حزقیال تنها نبی هست که خدمت او مختص کسانی از قوم خداست که در اسارت هستند تمام مخاطبین پیغام های حزقیال اسرا هستند مزمور 137 شرح قوم یهودا در اسارت هست در اون مزمور, مزمور نویس میگه که در حالی که قوم خدا در صفهایی به بابل و به طرف سرنوشت دردناکشون می بابلیها بابلی ها که قومی وحشی بودن و اونها گفتند ما شنیدیم که شما در موسیقی زبردست هستید شما دوست دارید که برای خدای خودتون آواز بخونید و برای خدای خودتون سرود بخونید خب حالا میخواییم چند تا از سرودهای شما رو که برای خدای خودتون میخونید بشنویم مزامور نویس میگه ما سازهای خودمون رو به درختهای های بی داویزان کردیم و از خاندن امتناع کردیم چون چطور میتونستیم در سرزمین قریب سرود پرستشی برای خدای خود بخونیم این موقعیتی بود که ارمیا، دانیال و هزقیال در زمانهای مختلف تحت اون شرایط بسیار سخت موعظه میکردند. هزقیال که با قوم یهودا به اسیری میرفت، به عنوان یک اسیر پیغامش در مورد مشکلات عظیمی هست که با اون مواجه بودن. قوم خدا هیچ رویای نبوتی، هیچ معبد و هیچ وعده ای از خدا نداشتند. هزقیال توسط خدا فرا خونده شد که رویای نبوتی از خدا به قوم خدا بده. خدا نمیخواست که قومش حتی وقتی در اسارت بودن بدون نبی باشد بنابراین او به هزقیال جوان ماموریت داد که به اسارت بره و به تبعیدیان خدمت کنه. یک آیه کلیدی در باب 22 کتاب هزغیال هست. آیه سی میگه من در میان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شکاف بیستد تا آن را خراب ننمایم اما کسی را نیافتم. خدا میخواست که در بین اوصرا مردی را پیدا کنه که دیوار رو بنا کنه و در شکاف بین خدا و قومش بیسته. چون خدا نتونست چنین کسی رو پیدا کنه به حزقیال ماموریت داد و این خدمت رو به هزقیال سپرد آیه 3 باب 22 شرح وظایف حزقیال است همه چیز عجیب و خارق بود این عنوان خوبی برای کتاب حزقیال هست. چون باور کنید که کتاب هزقیال پر از نبوتهای عجیب و خارق است برخی بر این گمان هستند که خود هزقیال نبی عجیب و خارق ای بوده وقتی انبیا را مقایسه کنید خواهید فهمید که دانیال، هزقیال و یوحنا رسول همگی وقتی کتابهاشون رو می نوشتن در تبعید بودند دانیال و هزقیال به بابل تبعید شده بودند و یوحنا به جزیره پاتموس تبعید شده بود هر سه این نویسندگان کتاب مقدس در تبعید چیزی رو به ما می‌دندن که محققین به اون نوشته‌های آپوکالیپتیک یا نوشته‌های مکاشفه‌ای میگن معنی کلمه آپوکالیپس دقیقاً این هست شما پرده و هجابی دارید و چیزی پشت اون پرده هست و به هیچ وجه نمیتونید بفهمید که پشت اون پرده و هجاب چی هست مگر اینکه اون پرده کنار بره اون موقع هست که میتونید پشت پرده رو ببینید کلمه آپوکالیپس به معنی کنار زدن پرده است تا مردم بتونن چیزهایی که در پشت پرده هست ببینن. نوشته های آپوکالیپتیک نه تنها ما را به پشت پرده میبرند بلکه ما را به آینده میبرند. هر سه این نویسندگان دانیال، حزقیال و یوحنا نویسندگان در تبعید هستند که بر آینده تمرکز دارند. اونها این متون مکاشفه‌ای را به ما می‌دهند که به اونها اسکاتالوجیکال هم میگند. کلمه یونانی اسکات به معنی چیزهای آینده است. اسکاتالوجی به معنی مطالعه چیزهای آینده هست نبوت های اسکاتالوژیکال شما را به پشت پرده میبرند و چیزهایی را که در آینده قرار هست اتفاق بیفته به شما نشون میده. زمانی که خدا میخواد داستان انسان رو تکمیل کنه هزقیال، اشعیا و ارمیان ماینده گروهی هستند که شما میتونید به اون مسلس تأکید بگید اشعیا نبی هست که بیچ از دیگر انبیا به ما نبوت های میده ارمیه نبی پدر هست. ارمیه توسط پیام های بزرگ عملیش برای ما در مورد خدا موعظه میکنه. وقتی مردم به اسیری برده می‌شن، ارمیه موعظه میکنه که به خدای خود فخر کنید و خدایتان را بشناسید. ارمیه مسرانه خدا را برای قوم یهودان نشون میده. هزقیال نبی روح است. هزقیال نه تنها از این نظر که های عجیب و خارق‌العاده از روح رو به ما عرضه می‌کنه، نبی روحانی است، بلکه او نبی روح است چون مرتتباً به روح خدا اشاره میکنه حزقیال در بود شخصی به روح خدا اشاره میکنه او شرح میده که خدا بر او قرار میگیره درون او قرار میگیره او رو بلند میکنه و از بسیاری لحاظ او رو در خدمت بسیار سختش دلگرم میکنه خدمت و وظیفه روح القدس تنها در یک بود نیست وقتی ما در مورد خدمات روح القدس که در یک ایماندار ساکن هست میخونیم شاید فکر کنیم که تنها خدمت روح القدس ساکن شدن او در شخص هست. به هر حال روح القدس نه تنها در ما ایمانداران ساکن هست بلکه روح القدس بر ما هم قرار می گیره. در کتاب اعمال ملاحظه کنید که چند وقت یک بار حرف اضافه بر ما و یا روی ما به کار رفته شما میتونید وقتی روح القدس بر شما قرار گرفت قوت بگیرید مسح روح القدس بر ما اغلب با خدمت ارتباط داره نشانه وجود روح القدس در ما سمره های روح است. حدود نه میوه روح القدس هست که در غلاطیان باب پنج آیات 22 تا 23 به اونها اشاره شده که دلیلی بر این هست که روح القدس در ما ساکن هست همینطور در عهد جدید به ما گفته شده که نشانه هایی از مسح روح القدس بر ما هم وجود داره که به اونها عطایای روح میگیم عطایای زیادی از روح هست که در عهد جدید شرط داده شده روح القدس نه تنها در ما و بر ما هست روح القدس با ما نیز هست کتاب مقدس شهر داده که وقتی دو یا سه نفر در نام ایسای مسیح جمع میشن، روح القدس در بین اونها هست. به طور خلاصه روح القدس ابعاد و وظایف زیادی داره. شما تقریبا همه اونها رو خواهید دید که در کتاب هزقیال به اونها اشاره شده و به شدت بر خدمات روح القدس تاکید شده. او هم مثل ارمیا از نمادهای عملی در موعظه هاش استفاده میکنه. محققین بر این باورند که دانیال و هزقیال عمیقا تحت تاثیر ارمیا بودند. ارمیا خیلی مسنتر از هزقیال و دانیال بود. دو نبی جوانتر احتمالاً بارها های ارمیا را شنیده بودند ما این را یقیناً نمیدونیم اما میدونیم که ارمیا تأثیر عمیقی بر دانیال و هزقیال داشته چون اونها از او نقل قول می‌کنند. اونها عملاً از بسیاری لحاظ در خدمتشون از او تقلید می‌کنند. های نمادین عملی یکی از راههایی است که هزقیال از ارمیا تقلید میکنه و نشون میده که توسط ارمیا تعلیم دیده در عهد جدید عبارتی هست که به عیسی مسیح و پولس رسول به عنوان اشخاصی دو شخصیتی نگاه کرده پولس رسول از خودش در مقابل اتهامات دفاع میکنه عیسی در مقابل اتهامات از خود دفاع میکنه معنی این عبارت عملا این بود که عیسی و پولس رسول متفاوت از دیگران بودند بدین معنی که محور زندگی اونها متفاوت از محور زندگی دیگران بود این رو میتونیم در مورد همه انبیا بگیم اگر مردی مثل هزقیال امروزه در بین ما زندگی کنه، احتمالاً او رو به بیمارستان روانی خواهند برد. در مورد عیسی مسیح هم گفتند که او دیو زده است. او به وسیله دیوها داره روحها رو اخراج میکنه. هزقیال نه تنها های نمادین عملی میکرد اون او نمادها رو شخصاً به کار می بود. به او میشه نبی پانتومیم گفت. هزقیال شخصاً تمام نقش های مأزشش رو خودش ایفا می کرد. وقتی که بعضی از کارهایی رو که انجام داده می به خاطر این های بی صدا شاید فکر کنید او دیوانه بوده یا کمی اختلال حواس داشته. حزقیال واژه پسر انسان رو صد بار به کار میبره. موضوع نبوت هزقیال که به خوبی ترتیب داده شده اینه: اورشلیم نابود خواهد شد. واضح هست که می میدونسته که به‌زودی به اسیری خواهد رفت. او احتمالا سعی می کرده با پیغام انبیاء دروغینی که موعظه می‌کردند، اسرا به‌زودی باز خواهند مقابله کنه. احتمالاً هننیا رو به خاطر میارید که با ارمیا مخالفت میکرد و میگفت که اسارت هفتاد سال طول نخواهد کشید، بلکه فقط دو سال طول خواهد کشید. پیدا بود که انبیای دروغین زیادی این رو مایذه میکردند. در بیست و اول کتاب هزقیال او انبیای دروغین رو تکذیب میکنه و تأکید میکنه که اورشلیم نابود خواهد شد. هزقیال هم مثل ارمیا مایذه میکرد که هجوم و قلبهای بابلیها و نابودی اورشلیم اجتناب نپذیره و در باپای 25 تا 32 نبوت حزقیال او بر علیه قومی نبوت میکنه که اورشلیم رو ویران میکنه در باپای 33 تا 40 پیغام او اینه اورشلیم دوباره برپا خواهد شد حزقیال هم عملا در اعلام پیام امید به ارمیان میپیونده حزقیال برکت خدا رو بر قومش نبوت میکنه در باب 48 تا 48 او نبوتی به ما میده که نبوتی ای هست این نبوت به آینده نگاه میکنه و میگه درست در همونجا در همون نقطه ای که معبد سلیمان قرار داره معبد دیگری بنا خواهد شد معبد هزاره اگه سرزمین مقدس رفتید به جایی بدید که معبد سلیمان قرار داشت که امروزه به اون مسجد الاقصی میگن که سومین معبد بزرگ مسلمانان در جهان هست معبد سلیمان روزی درست در همونجا قرار داشت این جاییه که حزقیال میگه معبد دیگری ساخته خواهد شد وقتی شما از مسجد دیدن کنید، باید کفشاتون رو در بیارید، چون در سرزمین مسلمان ها هستید، شما اجنبی هستید، چون در معبد مسلمانان هستید، بعضی این نبوت حزقیال رو عملا میپذیرند و باور میکنند که هزقیال میگه معبد جدیدی در این مکان ساخته خواهد شد، به این معنی که مسجد هم به هر حال نابود خواهد شد، به هر حال بعضی بر این باورند که این نبوت ارمیا تمثیلی هست، اونا میگن که این پیغام کل کتاب مقدس هست مخصوصا عهد جدید و معنیش این هست که ایثهای مسیح کلیسای خودش رو میسازه و اون معبدی که هزقیال در موردش صحبت میکنه اشاره به کلیسای ایسای مسیح هست باب چهل تا چه رو بخونید و ببینید که آیا این معزه عملی هست یا تمثیلی. از اونجایی که قبلا مقدمه و خلاصه کتاب هزقیال رو بهتون گفتم بیایید حالا به بعضی از عجیب و خارق العاده هزقیال هم نگاهی بندازیم. هزقیال رویاهایی داشت بسیاری از مؤیده هزقیال به صورت رویاهایی الهام شده بود بسیاری از مؤیده های رو در کتاب مکاشفه آخرین کتاب کتاب مقدس هم میبینین یوحنای رسول رویاهای ای رو ثبت کرده هر نمادی که یوحنا در کتاب مکاشفه به ما میده نمادی کتاب مقدسی است و بسیاری از اونها در کتاب هزقیال وجود دارد همونطور که قبلا اشاره کردم. دانیال و یوحنای رسول هم کتاب‌هایی از کتاب مقدس رو که پر از مکاشفات مربوط به آینده هستند نوشتند. اونها زمانی که در تبعید بودن مکاشفاتشون رو نوشتند. این یکی از رویاهای حزقیال هست. او اینطور میگه: پس نگریستم و اینک باد شدیدی از طرف شمال بر می آمد و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگی گردآوردهش و از میانش یعنی از میان آتش مثل منظر برنج تابان بود. و از میانش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این بود که شبیه انسان بودن و هر یک از آنها چهار رو داشت و هر یک از آنها چهار بال داشت و پایهای آنها پایهای مستقیم و کف پایهای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج سیغلی و درخشان بود و زیر بالهای آنها از هر چهار طرف آنها های انسان بود، و آن چهار روی‌ها و بال‌های خود را چنین داشتند و بال‌های آنها به یک دیگر پیوسته بود و چون میرفتند رو نمی‌تافتند، بلکه هر یک به راه مستقیم میرفتند و اما شباهت روی‌های آنها این بود که آنها روی انسان داشتند، روی شیر به طرف راست داشتند، آن چهار روی گاو به طرف چپ داشتند و آن چهار روی اقاب داشتند و روی‌ها و بال‌های آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود. و دو بال هر یک به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را می پوشانی و هر یک از آنها به راه مستقیم می رفتند و به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتند و در حین رفتند رو نمیتافتند و اما شباهت این حیوانات این بود که صورت آنها مانند شعله های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت مشعلها بود و آن آتش در میان آن حیوانات گردش میکرد و درخشان بود و از میان آتش برق می جهید و آن حیوانات مثل صورت برق میدویدند و برمیگشتند. می گشتند. چنان حیوانات را ملاحظه میکردم کردم اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات برای هر روی هر کدام از آن چهار بر زمین بود و صورت چرخ و صنعت آنها مثل منظر زبرجد بود و آنچهار چهار یک شباهت داشتند و صورت و صنعت آنها مثل چرخ در میان چرخ بود. و چون آنها می رفتند بر چهار جانب خود می و در هین رفتن به هیچ طرف میل نمی و فلکه های آنها بلند و مهیب بود و فلکه های آن چهار از هر طرف از چشمها پر بود، و چون آن حیوانات می چرخها چرخا در پهلوی آنها می رفت و چون آن حیوانات از زمین بلند می شدن، چرخا بلند می شد و هر جایی که روح می رفت، آنها می به هر جا که روح سیر می کرد و چرخا پیش روی آنها بلند می شد زیرا که روح حیوانات در بود. و چون آنها می رفتن، اینها میرفت و چون آنها می استادند اینها می استاد و چون آنها از زمین بلند می شدن چرخا پیش روی آنها از زمین بلند می شد زیرا روح حیوانات در ها بود تفسیر این معزه عجیب و از ازغیال چیه؟ معنی و مفهوم این رویا در واقع چیه؟ چهار مخلوق مهمترین بخش از رویا هستند. شما خواهید دید که یوحنا هم به همون نمادها در کتاب مکاشفه اشاره می کنه. در مکاشفه باب چهار وقتی درهای آسمان گشوده میشه در بین تمامی چیزها که دور تخت هستند شما چهار وحش یا چهار مخلوق زنده رو میبینید اونها همون چهار مخلوقی هستند که در کتاب هزقیال مشاهده کردید اولی شبیه یک شیر هست دومی شبیه یک گاو نر سومی شبیه انسان و چهارمی شبیه عقاب هست بسیاری بر این باورند که این خلاصه مکاشفه خدا در کتاب مقدس هست. وقتی خدا برای اولین بار خودش رو در کوه سینا برای انسان آشکار کرد، او مانند یک شیر غرید. حتی اگر قوم خدا کوهی رو که خدا از بالای آن با مردم صحبت می کرد، لمس می می‌مردند. روش بعدی که خدا خودش رو به انسان ظاهر کرد، توسط یک سیستم بزرگ قربانی است که در کتاب لاویان مشاهده کردیم. گاونر نشان دهنده حیواناتی است که به خاطر گناهان انسان قربانی می‌شدند. وقتی که خدا در خیمه پرستش در بیابان خودش رو بر مردم آشکار کرد شکل انسان در این چهار موجود زنده ما را به جایی از مکاشفه خدا در اناجیل میبره که خدا شکل انسان به خود گرفت خدا به مدت سی سال در بین ما زندگی کرد بعضیها ها میگن که اقاب نشان دهنده الوهیت هست مردی که بین ما زندگی کرد هم انسان کامل بود و هم خود خدا بود تمامی آینها ها معتقدند که جسم پوشیدن ایسای مسیح اوج مکاشفه خدا از خودش برای این جهان بود. چرخا دهنده مکاشفه ممتد و پیش خدا یا ادامه مکاشفه هستند. شاید حتی وقتی روح موجودات زنده بر چرخا قرار می گرفت، این شامل انبیایی هم باشه که مکاشفه رو اعلام میکردند. اینها بعضی تفسیرات ممکن برای رویای حزقیال هستند. تفسیر هزقیال بسیار بسیار سخت هست. خصوصا وقتی که او رویا و مکاشفه میکنه. یک موعظه بزرگ هزقیال در باب سوم نبوتهاش قرار گرفته. نام موعظه دیدبان خانه اسرائیل هست و بعد از انقضای هفت روز واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، تو را برای خاندان اسرائیل دیدبان ساختم پس کلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. محینی که من به مرد شریر گفته باشم که البته خواهی مرد اگر تو او را تهدید نکنی، و سخن نگویی تا آن شریر را از طریق زشت او تهدید نموده او را زنده سازی آنگاه آن شریر در گناهش خواهد مرد اما خون او را از دست تو خواهم طلبید لکن اگر تو مرد شریر را تهدید کنی و او از شرارت خود و از طریق بدخیش بازگشت نکند او در گناه خود خواهد مرد اما تو جان خود را نجات دادی و اگر مرد عادل از ادالت خود برگردد و گناه ورزد و من سنگی مسادم پیشوی وی بنه هم تا بمیرد چون که تو او را تهدید ننمودی. به عنوان یک نبی، حزقیال این معذر را با احساساتی شخصی معذر میکنه. وقتی ارمیا انبیاء دروغین دوره خودش را توبیخ میکنه، او به اونها گفت، شما پی را میخورید و پشم را میپوشید و پرواری ها را میکشید اما گله را نمیچرانید. ضعیفان را تقویت نمیدهید و بیماران را معالجه نمینمایید. و شکسته ها را شکسته بندی نمی کنید و رانده شدگان را پس نمی آورید و گم شدگان را نمی طلبید بلکه برانها با جور و ستم حکم را نمایید پس بدون شبان پراکنده می شوند و خوراک همه ی حیوانات صحرا گردیده آواره می گردند. گوسفندان من بر جمیع کوها و بر همه ی تلهای بلند آواره اند و گله من بر روی تمامی زمین پراکنده گشته کسی ایشان را نمی طلبد و برای ایشان تفحص نمی نماید پس ای شبانان کلام خداوند را بشنوید خداوند یهوه ومی فرماید به حیات خودم قسم هر آینه چون که گله من به تاراج رفته و گوسفندانم خوراک همه ی حیوانات صحرا گردیده شبانی ندارن و شبانان من گوسفندانم را نطلبیدند بلکه شبانان خیشتن را چرانیدن و گله مرا رعایت ننمودند بنابراین ای شبانان کلام خداوند را بشنوید خداوند یهوه و چنین میفرماید اینک من به ضد شبانان هستم و گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبی و ایشان را از چرانیدن گله معزول خواهم ساخت تا شبانان خیشتن را دیگر نچرانند و گوسفندان خود را از دهان ایشان خواهم رهانید تا خوراک ایشان نباشند و اما به شما ای گوسفندان من خداوند یهوه و چنین میفرماید من در میان گوسفند و گوسفند و در میان قوچها و بزهای نر داوری خواهم نمود آیا برای شما کم بود که مرتع نیکو را چرانی دید بلکه بقیه مرتع خود را نیز به پایهای خیش پایمال ساختید و آب زلال را نوشیدید بلکه باقی منده را به پایهای خیش گلالود ساختید و گوسفندان من را که از پای شما پایمال شده است میچرند آنچه را که به پای شما گلالود گشته است مینوشند بنابراین یهوه به ایشان چنین میگوید هان من خودم در میان گوسفندان فربه و گوسفندان لاغر داوری خواهم نمود او در گناه خود خواهد مرد و عدالتی که به عمل آورده بود به یاد آورده نخواهد شد لکن خون او را از دست تو خواهم طلبید و اگر تو مرد عادل را تهدید کنی که آن مرد عادل گناه نکند و او خطا نورزد البته زنده خواهد ماند چون که تهدید پذیرفته است و تو جان خود را نجات دادی ای. نمیدونم این رو باور میکنید پولس رسول در دوره خودش اون رو باور داشت پولس رسول گفته بهش فکر کنید ما که پیام انجیل مسیح هستیم آیا برای مردم رایحه حیات هستیم یا بوی مرگ چیزی که در دوم قرنتیان باب دو منظور او بود اینه اگر شما انجیل عیسی مسیح رو برای نجات مردم به اونها بشارت بدید و اونها به این بشارت باور کنند اون موقع شما رایحه حیات رو به اونها دادید و شما مهمترین کسی خواهید بود که اونها در زندگی دیدند چون که مجد نجات رو به اونها دادید اگر مجده انجیل رو به اونها بدید و اونها رد کنند اون موقع شما بوی مرگ برای اونها خواهید بود چون این امکان رو از اونها گرفتید که بتورن بگن من نشنیده بودم من خبر نداشتم. با این جمله پول سوال میکنه چه کسی برای این چیزها صلاحیت داره. سالها پیش در یک تابستان من در شهر خودم برای جوانان کار اجتماعی میکردم. ما مشغول ساختن زمینهای بازی برای جوان ها بودیم. مسئولی عقیده داشتند که اگر جوانان وقتشون رو در این زمین ها با ورزش بگذرونند از بسیاری جرایم جلوگیری خواهد شد. در پایان تابستان من در حال تعطیل کردن یکی از این زمینهای بازی بودم و دیدم مردی منو تماشا میکنه احساس کردم که میخواد با من صحبت کنه اون منتظر شد که من کارهام رو تموم کردم و اومد و از من پرسید آیا میتونه با من صحبت کنه او رفت و روی یک نیمکت نشست و سیگاری روشن کرد و این داستان رو برای من تعریف کرد او میگفت توی جنگ مجروح شدم اکثر ما مجروح شده بودیم در حالی که روی زمین افتاده بودم آتش دشمن هنوز بر روی ما میبارید و من دیدم که شیشی یکی یکی بالای سر مجروحان سینه خیز میره و چیزی به اونها میگه امیدوار بودم که نزد من هم بیاد، اما او تیر خورد. وقتی او اولین بار تیر خورد، او باز هم با اون حال مجروحش به سینه خیز رفتن ادامه میداد. برای بار دوم تیر خورد، ولی باز هم خودش رو به طرف شخص دیگه ای کشید. اون شخص من بودم. و او برای سومین بار تیر خورد و هرگز نتونست چیزی به من بگه. من تمام تابستون داشتم شما رو تماشا میکردم و شرط می بندم که شما میتونید به من بگید که اون کشیش چی میخواست به من بگه من تا اون موقع در هیچ شرایطی به اون اندازه برای اعلام انجیل به کسی آماده نبودم و او گفتم فکر میکنی اون کشیش زیر آتش دشمن به مردانی که در حال مرگ بودند چی میگفت؟ خیلی از کشیش ها پیغامی برای کسی که میمیره ندارند به عنوان یک ایماندار اگر در چنین شرایطی قرار بگیرید آیا اونقدر به انجیل ایمان دارید که اون رو با کسانی که در حال مرگند درمیون بذاری هزغیال برای انسانهای زنده و انسانهای در حال مرگ پیغامی داشت. هزقیال معتقد بود که پیغام آور بود چون او از طرف خدا پیغام داشت. حزقیال هم مانند پولس رسول معتقد بود که نبی خداست و برای مردم یا رایه زندگی یا بوی مرگ خواهد بود. اگر ایمان داشته باشیم که کتاب مقدس کلام وحی خداست ما هم با حزقیال هم عقیده خواهیم بود که نگهبانان جان کسانی هستیم که اونها رو میشناسیم وقتی به مفهوم اون مسئولیت پی ببریم و به اون بچسبیم میتونیم مثل پولس بگیم چه کسی شایستگی این چیزها رو داره به این دلیل که هزقیال بر روح القدس در موعظه‌ها تاکید میکنه هزقیال هم مثل پولس لیاقت انجام وظیفه‌اش رو از روح القدس بینه در دوم قرنتیان 3:5 پولس میگه نه آن که خود کفایت داشته باشیم که چیزی را به حساب خود بگذاریم که گویا از ما باشد بلکه کفایت ما از خداست فقط خدا میتونه مارشایسته مسئولیتی به اون بزرگی بکنه که دیدبانان روحانی باشیم حزقیال اون رو به این ترتیب بیان میکنه بعد روح خدا من رو بلند کرد و به محض اینکه جلال خدا از جایگاهش برخاست از پشت سرم صدای زلزله عظیمی شنیدم روح مرا رو بلند کرد و برد و با تلخی در قلب و روحم رفتم دست خداوند بر من قوی می بود همه اینها اشاره به مس روح القدس بر او بود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 سالها قبل من با مردی نهار می‌خوردم که او را به عنوان یکی از خادمین برجسته می‌شناختم. او یکی از انبیاء دوران ما بود. ما در مورد این واقعیت صحبت می‌کردیم که هر دو های کمرویی بودیم. همینطور در مورد مسح روح القدس با او صحبت می‌کردیم. یادم یادمه که به او گفتم وقتی موعظه می‌کنم، گاهی احساس می‌کنم که با فیض خدا مسح روح القدس وجود داره و گاهی وجود نداره. راجب زنی با او صحبت کردم که بعد از جلسه یکشنبه صبح نزد من آمد و گفت: صحبت زیبای کوتاهی بود به او گفتم فقط یک صحبت خوب زیبا بود و من هیچ مسی در اون نمی بینم. فکر می کنم چیزی رو که به او گفتم اکثرا در این موارد به همه مردم میگم مطمئناً شما چیزی از این صحبت های کوتاه دریافت نکردید و مسح روح القدس امروز در صحبت های من نبوده وگرنه برای تشکر نزد من نمی اومدید. من حقیقتاً اینطور حس می کردم پاسخ این بزرگ این بود فرق بین من و شما اینه اگر مثل روح القدس وجود نداشته باشه شما هم میتونید صحبت کوتاه و مختصری بکنید اما من نمیتونم اگر روح حضور نداشته باشه مثل این میمونه که کسی توی دهانم چوب پنبه پر کرده و من نمیتونم حرف بزنم من از او دعوت میکردم که بیاد و برای من موعظه کنه او داشت به من میگفت که چرا نمیخواد بیاد او گفت به عنوان واعظ افتتاحیه به جایی رفته بود و وقتی باید صحبت میکرد، برخاست اما نتونست چیزی بگه و اطراف نگاه می کرد و می گفت متاسفم و بعد به سر جای خود برگشته و نشسته او می گفت اگه می خوای بیام توی کلیسای شما هم همون کار رو تکرار کنم می خوای که همه اعضای کلیسات بدونن که من هیچ پیغامی از خدا دریافت نکردم وقتی که من با این واعظ کمرو و نبی دوره خودمون صحبت می کردم از تعمق او در روح القدس تعجب می‌کردم هزقیال همچنین نبی بود هزقیال می گفت گوش کنید وقتی روح بر من هست اون وقت میتونم سخنان او رو بگم، اما اگر روح بر من نباشه، احساس میکنم که با تنابهایی بسته شدم و لال شدم، حتی نمیتونم حرف بزنم. هزقیال چون این نبی بود. وقتی که با این نبی غیرعادی و عجیب و با نبوتهای العاده او آشنا بشید، همونطور که در مورد ارمیا دید، از این های بزرگی که هزقیال معایزه کرده دنبال های عملی برای زندگی خودتون باشید. وقتی که کتاب هزقیال رو میخونید دعا میکنم که خدا به شما برکت بده. هزقیال کاهنی بود که نمیتونست در روزهای تاریک اسارت بابل انجام وظیفه کنه اما دعوت شد که در نقشه خدا نقشی اساسی ایفا کنه. خدا او را به عنوان دیدبان بر خانه اسرائیل گماش که در رابطه با گناه، توبه و بازگشت صحبت کنه. در ابتدا دو کلمه بزرگ توجه ما رو جلب کردند. آپوکالیپس که به معنی پرده برداشتن بود. و اسکاتولوژی که به معنی آخرت شناسی بود که از چیزهای آینده و یا زمانهای آخر صحبت میکنه. شما مرتبا با این مفاهیم در کتاب مقدس مواجه خواهید شد. هزقیال ما کررند بر رویدادهای زمانهای آخر شعار میکنه چون چیزهای آینده موضوع مورد تأکید او در این نبوت مهمیه هست. چون که این وقایه امید نهایی قوم اسرائیل هستند. حالا از شما شنوندگان عزیز میپرسم آیا خداوندیسای مسیح و قدرت روح او رو در زندگیتون میشناسی؟ او گفته نزد من بیایید ای تمامی گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد امروز وقتشه که نزد او برید دانشویان عزیز متشکرم که با ما همراه بودین. اما همونطور که معلممون شما را تشویق کرد اگر تا کنون عیسی مسیح رو به عنوان ناجی نپذیرفتین امروز نزد او بیاین. قبل از اینکه قلب و زندگیتون رو تسلیم اون بکنین، مشغول امور روزمره زندگیتون زندگی نشین. این بزرگترین تصمیمی هست که شما میتونین بگیرین و شمایی که قبلا به عیسی مسیح ایمان آوردین مانند چیزی که هزقیال به ما تعلیم داد اگر ما از بشارت دادن به کسی خودداری کنیم و اون شخص بمیره خون اون از دست ما مطالبه خواهد شد. بنابراین این هفته خودتون رو وقف بشارت انجیل ایسای مسیح بکنین. تا برنامه بعدی امیدوارم فیز و محبت اون از طرف شما به دیگران جاری بشه.